بسم الله الرحمن الرحيم بنا حبنا قبه الله بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا سیدنا محمد وعلى آل محمد افضل الطاهرین بنا لبيت الطيبين الطاهرين المهديين المنتجبين سیما بقیت الله في السماوات بنارزین اموزو بالله ولی الشيطان الرجيم فاعتبرو به حال ولد اسماعیل و بنی اسحاق و بنی السلام فما عشد اعد هدال الاحوال و اقرب اشتباه الانفال فی اسم حمدالله خدمت عزیزان برادران و خانان بزرگواز در این ایام متعلق به سیدت و آدمین صدیقی تاهر سلام الله علیها در محضر سخنان پررونق مولانا و مختدانا امیر المؤمنین نشسته ایم و انشاءالله از مجموعه نورانی خطبه 192 نه جل بنا به بهرها میبریم. سخن به اینجا رسید که در یه نگاه بسیار امید جامع شناسانه. امیر اشاره فرمودن به پاری از روش هایی که در میان مؤمنان شکل میگیرد. یه تحولات اجتماعی رو امام. با نگاه منتقدانه، موشکافانه، بررسی فرمودند که در نوبت قبلی مطرح کرد. و به زیبایی تمام ایار، عوامل توفیق و رسیدن به قلعه انسانهای کامیاب و مؤمن رو در طول تاریخ در ارتباط با خدا و خلق مطرح کردند. اونها که در عشق به خدا ثابتند میپذیرند همه چیز رو در راه در ره منزل لیلی که بته خطرهاست، بسی شرط اول قدمان است که مجنون باشی رو پذیرفتند، به جان خریدند. مکروه را و دشواری ها را احتمال میکنند، متحمل میشن به خاطر اون خوفی که از محبوب دارند. و خوف رو با هم امیر دو کلید واژه اصلی کامیابی مؤمنان برای جلب محبت خداوند و چون با حق دانست اما در ارتباط با یکدیگر، دیگر امام محلفه هایی رو فرمود اینا اجتماع دارن اعتلاف دارن تعاون دارن تناسر دارن رازهای موفقیت اینها رو بازگو فرمود از اون طرف هنگامی که دست می دهد موقعیت و لطف الهی به سر مینشیند، عوامل تهدیدکننده کننده رو امام یک به یک مطرح کرده چقدر عجیب بود این کلمات حضرت حین وغه الفرقه و تشتت الفه، انگامی که تفرقه می آید، تشتت حاکم می شود، اختلاف کلمه و دل می آید شغبگرایی و حزبگرایی می شود، دوستی ها به کناری می رود. خداوند جامعه کرامت رو دوباره از تن این جماعت بر می کند. به عزت و نعمتشون بسر میآید و نام اینها چون قصه در تاریخ برای عبرت دیگران باقی میماند به اینجا که رسید به اینجا که رسید وجود عمرک امام چنین میفرمایند به عنوان یه از از اون چه فرمودند از این بیان کلی یه نمونه هایی رو میگن که در این حال باز خود این هم یه مدل کلی است فعت رو پس عبرت بگیرید به حال ولد اسماعیل به حال فرزندان اسماعیل و بنی اسحاق و فرزندان اسحاق و بنی اسرائیل و فرزندان اسرائیل استهزار دارید که خوب ابراهیم خلیل الرحمن فرزند اول اسماعیل زبیح الله با همان عنوانی دارد. اونگاه در پاس این که ابراهیم فرزند رو به تمام وجود تقدیم حضرت باری تعالی کرد خداوند مجد داد به او بشرناه و به غلام و فرزند شایسته والایی اصحاق رو به اون داد و به دنبال اون له نافله و فزونی شد که یعقوب از نسل و دودمان اسحاق آمد بزرگان تاریخ البته نام فرزندان دیگری رو هم می نویسند که تیره های بعدی بنی اسرائیل رو شکل می دن. اما ناماورشون در میان فرزندان و تیره بنی اسحاق یعقوب است بعد از آن عیسو اما ابتداعا یعقوب است نام یعقوب در تورات اسرائیل است اسرائیل عنوان و لقب او اسرائیل است اسرائیل ایل یعنی خدا همان گونه که جبرائیل میکا ایل اسرافیل اون ایل یعنی خدا در عبری همانطور که جبرا و گبرا به معنای عبد است و جبرائیل یعنی عبدالله اسرا به معنای سرباز گوش به فرمان سرباز آماده پس اسرائین در حقیقت معنای واقعی اون که لقب یعقوب نبی است به معنای سرباز خدا سرباز خدا است. حالا ما به دلیل انتباق این اسم بر این رژیم مجعول و ساختگی و این طفل نامش رو واقع شده در خاور میان خاطره خوشی از این اسم نداریم اما کلمه اسرائیل به معنای سرباز گوش به فرمانه خدا هست که لقت یعقوب نبی پدر یوسف است ابرت بگیرید به حال فرزندان اسماعیم بنی اسحاق و بنی اسرائیل فما اشهد اعتدال الاحوال فرقی نمی کند که من نمونه رو دارم میگم برای شما مثل که امام اینطور طور چون چه بسیار احوال مردمان و امتها با هم اعتدال دارد این اعتدال به معنای میان روی نیست از ماده عدل میاد یعنی تناسب تساوی حال مردمان یکسانی دارد شبیه هم است شما برش‌های تاریخ رو برش بزنید باز کنید بررسی کنید همون قواعدی رو که می‌بینید عامل به وجر رسیدن یا زوال سلسله بود تو سلسله دیگه هم همین رو می‌بینید اون عاملی که عواملی که موجب توفیق، کامیابی و رونق بود، می‌بینید دقیقا در برها های دیگر زمان هم همون عوامل کار خودش رو کرده است و موجب توفیق و موفقیت بوده. است. حالا این رو در عالم سیاست نه در عالم دیگر، در عالم اقتصاد هم نگاه کنید همین. اون درستکاری، صحت عمل به تعبیر قرآن، عمل صالح در یک صنعتگر می‌بینید بعد از 50 سال شهست سال، ست سال، هنوز تولیداتش حرف اول رو میزنن. نامشو که میبرن به استداه امروزی برندشو که میگن میبینی همه جایگاه براش قائلن، حرمت براش قائلن. علاقمند به کالای اون هستن. راز موفقیتش عمل صالح بوده است. هزار سال قبل هم همین، علاقان هم همین هزار سال آینده هم شک نکنید. سنتگری موفق است که کالای با چیفیت ارائه کنه. این رازو محفقیتش خداوند یه اصول ثابتی قرار داده است در توفیق و در رسیدن به موفقیت و در شکست و همین گونه دقل کاری، غشکاری، سیاه کاری ممکنه یه کسی با این مسائل یه جوری فریب بده زمانی جامعه رو اما دیری نمی پاید. اسباب زباد خودش رو فراهم کرده است چنین کسی این حال ثابتی است که خدا در وجود قرار داده است. امیرالمومنین فرمود فما اشده اعتداله لأحوال چقدر احوال مردمان و جماعت به هم تناسب دارد ادل یک دیگر است، مانند یک دیگر است و به اشتباه لأمسان چقدر مثلها و نمونه ها با هم اشتباه دارند اشتباه از ماده شباهت یعنی به هم مانندگی دارند همانندی دارند. پس امیر فرمود فاعتبروا اعتبار کنید عبرت بگیرید به حال فرزندان اسماییل اسحاق و یعقوب اما اینی که من این نامها رو میگویم منحصره به اینها نیست بلکه در تمام امثال و احوال چنین مطالبی که من میگویم دیده میشدد بعضا تعمل و امرهم تعمل کنید امر ایشان را تعمل امعان و نظر یعنی به دقت در مسئله فرو رفتن و بررسی کردن تعمل و امرهم فی حال تشتتهم هم و تفرق وقتی اینها به یه تشتت و یه تفرقی گرفتار شدن وقتی دل این اینها از هم جدا شد دستها از یک دیگر برون آمد پشت به هم کردن تدابر کردن نتقابل انگامی که دلهاشون با هم اعتلاف نداشت بدخواه هم شدن همونطور که خوندیم زقاین چینه ها آمد شحنا بخل ها و حسد ها و بددلی ها و عدابت ها آمد وقتی که چنین حالی دست داد نتیجه چی شد همان شد که قرآن به مسلمانان میگد فلا تنازم نزاع نکنید با هم بعد هم نشید فتف شلو فشل بینتون میاد ضعف و سستی میاد بعد فیض خبری حکم بعد قدرت و شوکتتون میره همان میشود که میبینید در طول تاریخ بر جامعه اسلامی هم میآید که امیر در ادامه انشانلا فردا میرسیم به آسیب شناسی زبان تمدن اسلامی از زبان امیر در اون تاریخ که امام به چه شکوه و قدرتی داره به عینه بازگو می کند پیش روی مسلمانان را در هزار سال دو هزار سال پیش تاریخشان رو پیش رو شد. فرمود وقتی اینطور شد لیالی لیا کانت لعکاسر و القیاسر بنده تعمل کنید اون وقتی رو که اینها و پیغمبرزادگان بودن بزرگان بودن شخصیتی بودن اما وقتی تشدت و تفرقه آمد بینیشان شبه هایی آمد که اکاسره و قیاسره عربا اینها شدن صاحب اختیار و مالک و رقا به اینها شدن قلعه رو چرا امیرومون فهمد لیالیه نوعا در این موارد میگن ایامن روزگاری اما امام فهمد لیالیه خب روزگار یه بخش روشن داره یه بخش تاریخ دارد لیلونه ها رو داره دیگه به دلیل اینکه تمام دوران دوران ظلمت و تاریخ بود امیر المومنین ایام نمیگه لیالی میگه زیباست. لیالی شبهایی شد که اکاسره اکاسره جمعه کسرا یا کسرا کسرا یا کسرا همان خسرو خسروپرویز خسرو پر... که لقب سلاتیم ایران زمین در یه خسرو بوده است در عهد ساسانیان مثلا در عربی خسرو میشه کسرا جمعش میشه اکاسره ملوک و بزرگان روم باستان قیصر بودند اینها ها این لغب رو شنیدی در مورد اینها ها جمعش قیاصره زمانی که اکاسره و قیاصره سلاطین و قدرتمندان صاحب اختیار اینها شدند شدن و بر اینها ها اختیارداری کردند و اینها اعتبارشون از لفت کفرف تازون هم به همین خاطر تازون هم از ماده هیازه معنای اون به معنای من دور کردن یمنعون هم اینها رو منعشون کردن ان ریف الا ریف یعنی بیابان‌های سرسند از سرزمین های شاباق و سرسند مانند از سرزمین شامات مثلا و بهرل ایران و آب فرابان ایران دشنه و فراند فراد سو مراد سو این از بلندی های آنتولی میان خاک ارانق رو مشروب کنند به هم جایی متحد میشن به خلیج فارس میریزن اروند رو تشکیل میدهن و به خلیج فارس میریزن خب این مهد تمدن بشری در دیرباز بین و نهرین بوده است به تعبیر ویلدوراند در تاریخ تمدن جلد اول گاهواره تمدن بشری بوده بین النهره همین دونک همین تجله و فراد با این ویژگی هایی که سرزمین اراغ داشته است و این مهد تمدن شما آشوریان کلدانیان شمال جنوب فنیقی ها همه بالا این سرزمین بودند. تمام تمدن های کهان اینجا پا گرفته و شکل گرفته است قوغایی بود است این سرزمین اراغ فرمود و بحر الاراق اینها رو از بحر الاراق دورشون کردن و خضرت دنیا و از سرزمین های شادا و با زنده دنیا اینها رو به کجا راندند؟ الى منابط شیر منابط یعنی محل رویدن ها رویدن شیح گیاهی بوده است که شاید مثلا در فارسی هم نمونه اون بوده است درمه گاهی به تلفظ هامیان دورمنه میگفتند این گیاه رو یک گیاهی است که بوی بدی نداشت اما هیچ خاصیتی نداشت خارمانند بود به سرزمین‌های این گونه و مها سریح به معنای حب وزیدن شدید به سرزمینهایی که وزیدن شدید بادها در آن حاکم بود سموم بادهای گزنده و نکدل معاش و به جایی که اینها رو مبتلا کردن به جایی که نکدل معاش نکت به معنای ناچیز البلد طيب و یخرج نبات و خوب به اذن رب خب و و خب حبس الا یخرج الا نکدا قرآن میگه سرزمین پاک حاصلش خوبه از شورزار زمین شوره حاصل بر نیارد اینو میگن نکت زمین شوره بی حاصل و نکدل معاش فتركوهم أولى من مساكين اینا رو در نهایت فشار اقتصادی قرار دادن به گونه‌ای که رها کردن اینا رو آله آله از ماده عیال میآید آئله میآید اصل خود لغت جالب اصل خود لغت عیله به معنای فقر است نیاز است حاج این خفت و یعنی عیلتا در قرآن داریم اگر نگران فقر هستید چنین و شنان اینکه این گرفتار پای بند عیال دیگه را سودگی مبند خیال مثل این که در لغت حالب از همین ماده میاد بالاخره اهل و آئله از اینه دارن و خارج دارن بزر از این کلمه گرفته میشه این واژه در از آئله از ماده یه ایله گرفته میشه فترکو هم آغتن مساکین اینها رو راها کردن نیازمند، فقیر، محتاج اخوان دبرین و ببرین اخوان ملازمت میاد خیلی جالب این کلمم یه توضیح واجهگانی بدم نمیخوام به واژه ها بمونه بحثمون اما کلمه اخ به معنای ملازمت و مشابهت وقتی دو چیز ملازم و پیلسته هم میشن میشن اخ حالا این دو جمع داره گاهی که این ملازمت و پیوستگی بر اساس یک اصول ثابت جالب ارزشمند است جمعش میشه اخوه بعد میگن ان نمل مؤمنون اخوه فصله بین این خداوند مؤمنین رو اخوه مینامد چون اینها ملازم و پیوسته با هم باید باشند وقتی در مباس نام منشور تربیت گفتیم اون بحث و حبت رو که برخیر رسید خدمت امام گفت آقا ما در شهر و دیار ما اسبهان خیلی اوزا خوبه همه رفیقیم بنده ارز میکنم اسبهان ها راوی نگفت من میگم ارز به خدمتون خیلی با هم دوستیم نزدیکیم اصلا برای هم فدایی هم میشیم ما اینقدر مؤمنیم و شیعیان شما اینقدر وابسته ما اخوهی همیم زده ترسل میکردن فهمدن تا چه حده این خوبتتون گفت خیلی بالاست، فهمدن اگر یکی از شما نیاز داشت دست کرد تو جیب اون برداشت اون چی میگه بهش گفت میزنه پشت دستش فهمد با این شما رو تعم رو نچشیدید چیه دایه خوبت میکنی این که خوبت نیست چه تو شما اجازه میدید یک کسی تو جامعتون اینقدر نیازمند باشه که به خودش این اجازه رو بده پس منابراین شما اخ نیستید با حالش رو نمیدونید و رو نمیدونید این که نمیشه بروبا هنگامی که بر اساس یه اصول ثابت و زیبایی پیمستگیش میشه اخوه اما گاه ممکنه این ملازمت بر اساس منافع سیاسی باشه منافع جغرافیایی باشه منافع اقتصادی باشد این وابستگی و تلازم رو میگن اخوان اخوان رضا به گروه های فکر سیاسی میگن اخوان اخوان و صفا. یه گروهی اودندی وقتی در تاریخ اسلامی تحولات ایجاد کردند در غن سوم و مچارم مثلا فرمود اینها اخوان دبرین اینا ملازم شدند با این فشارهایی که برشون آوردن، اکاسر و غیاسره اخوان دبرین وقتی که حیوان این پالان زین رو اندازش زیاد رو پشتش میمونه دوستان و آشنا میدونن این در انتهای پشت حیوان چی میشه زخم میشه اینو میگن دبر اخوان دبرین و وبرن وبر یعنی کرکه شطور کار اینها به این کشید که سر با حیوانات افتاد اون هم این مشکلات سر و کارشون افتاد با حیواناتی که بار ببرند و زخم بشند و باز تیمار این حیوانات کنند سر و کارشون افتاد با واشتران این که چوپانی اینها بکنند و نمیدونم کار اینها بکنند ازن لل در بدترین سرزمین ها و پسترین امتاه از جهت سرزمین اینها رو ساکنشون کردند و اجدبه هم قرارن اجدبه وقتی که قحط میشه محل با می حی حتی لام یعنی قهتی محل یعنی کمیابی اینو میگن اجدبه و اجدبه هم قراره در یه شرایط سخت قهت کمبود اقتصادی لا یعونون اله جناح دعوته به ها برای این فرزندان اسماعیل برای این پیغمبرزادگان و این توده و این جماعت هیچ بالی نموند که بخوان جناه دعوتن یعنی تسمونه به جهت و جناه دعوتی نموند که طلب کنن و بخواهن که از اون یاری بجویند و اعتصام بجوین و کمکشون کند و یارشون باشد. یعنی توی شراعت بد جغرافیایی اقتصادی گرفتار آمدن بی کسو کار، بی یاورش ولا انا زل الفت يعتمدون على عزها و هیچ راهی نداشتن که به یه سایه الفت و پیوستگی پناه ببرند که به سبب اون اعتماد کنن و تکیه کنن و عزتی را طلب کنند در نهایت فشارها و مخمصه‌ها فلهم واولو اتقان دهنده است فلهم واولو مزد عربه یعنی امیرون و دارن وضعیت در حقیقت جامعه عرب قبل از اسلام رو همین فرزندان اسماعید رو از یه سو توصیف میکنند و بازگو میکنند فرمود فل احوال و مزد هره حالاتشون بیقرار مسترب دگرگون پریشان نه قرار اخلاقی در این هاست نه قرار فکری و اقتصادی در این هاست نه بویی از فرهنگی دیده میشه فلحوالو مستربه ولعایدی مختلفه حالاتشون مسترب دست ها و قدم ها این سونسو میزنند هیچ ثبات و درستی ندارند هیچ قراری ندارند ولک هسرتو متفرقه اون کثرت به اجتماعشون به تفرقه بدل شده است هر کسی سوی خودش رفته است و به درد بی خودش مبتلا است چنین حالات حالا اضافه کنید پیامدهای این مسامر این چنینی را یعنی وقتی اینها در چنین شرایطی قرار گرفتند چه اتفاقات بدی در بین اینها حاکم شد از جهت فکری اعتقادی اجتماعی که دو سه نمونه اون را امیرالمؤمنین بازگو میکنند فی بلاء این ازلن، ازل همزه لام به معنای زیق زنگ در چه ابتلاعات فشرده گرفتار آمده چه سختی های بی بر اینها ها کشیده شد و اتباق جهل وقتی یه چیزی کاملا روی یه چیزی قرار میگیره میگین رو هم چی شد منطبق شد و اتباق جهلن، و در یه جهل منطبق یعنی جهل فراگیر بلا در اوج جهالت در اوج و دیگه از دل این جهالت چی در اومد پناه به خدا میبریم من بناتن موعوده واو حمزه دال واو علف حمزه دال میشه وعد یعنی فقل و سنگینی به دلیل اینکه که که این دخترکان به گور سپاردنی شدن خاک سنگین بر ایشان تا مدفونشان کنند، به دفن دخترکان و زنده به گور کردن دختران وعد می‌گفتند، وعد البناد یا نه فراتر از این چون کار کار سنگینی بود و از بشره احد هم بلونفا زلده چهو مصبت دا. اعتوار را به من سو ما با شربه و ح کسی بعد اعتوار را من سو ما با شربه ای اونث که ال اون اماد دوسه حافت تو رام ال سا امایتکون خداوند بهنقد می جشن. این عمل زشت و شنی و شماون که گروهی از عرب جاهده انجام میدادد و دخترانشون را از ننگار به تعبیر خودشون به خاک می و زنده به گور می کردن. وقتی اومد یک کسی از اینها برای پیامبر بعد از اسلامش بود ماجرای به گور سپاردن دخترانش رو گفت به یه جایی رسید که شانه در تاریخ داریم شانه های پیامبر میلرزید و حق هق می پیامبر. پیبر دیگه نگو همدن دیگه نگو یا رسول تو وقتی که من اینو کردم، نمازش کردم نمازیش کردم بردمش پیامبر بعد خاک کنده به من کمک میکرد خاکا رو از تو گور در می آورد از گودال خاکا داشتن باش بازی میکنم بعد گفتم بخواب اینجا خوابید برای من دستکان میداد بچم بعد من خاکا رو روش میریدم پیامبر nil لرزیدن دهش میریفتن هق هق میگفتن نکن گفتن بیش از این قظم خدا را نجنبان من بناتم موعوده از دخترانی چنین و خاک سپارده شده و زنده گور شده و اصنام معبوده و سنمهای عبادت شده آقاییست به نام کلبی قرن سبوم و چارمه. کتابی دارد به نام الاسنام تاریخچه شیوه ساخت، ماده ساخته شدن محل عبادت تمام سی بوته معروف جاهلیت عرب در جزیدت عرب رو لیست میکنه کتاب علمی رفرنس الان در دنیا در مراکز علمی دنیا تک تک اینها رو میگه عمل مال کجا بود لات مال کجا بود عزا مال کجا بود نائل مال کجا بود یک که اینها رو بازگو میکنن تمام وجود شکلشون حیعتشون مانندگی اینها و خصوصیاتشون و اصنا من معبوده چه سنمه هایی که به عبادت کشیده شد و مورد عبادت قرار گرفت از اطباق جهل از جهانتی که بر اینها حاکم شد در این شرابط دوشبه و ارحام من مقطوعه ببینید از پیامت های جهل امام به چند تا دره اشاره میکنه اینجا تو این بلا و جهل اینها یک امون اولی فرمود بنات موعوده دختران زنده ببور شده دوم از نام معبوده سنم ها و بطایی که اینها متاسفانه در اوک شرک سر در پیشگاهی اینها فرو می آوردند و خوردی در پیشگاه این بطایی میکردند یا بدون دون الله مالا هم و لا یزره عبادت غیر خداوندی که هیچ نفو زیانی هم حتی برای اینها نداشت ترک کردن اون سوم و ارحام مقطوعه هایی که قطع کرده همیشه خدمت دوستانشون شده است وقتی ما به دنیا می آییم یک کسانی هستند که ما با اینها ناخواسته یا خواسته نسبت داریم یعنی وقتی به دنیا می آید جزاتاری دو تا برادر سه تا خواهر این دو تا عمو سه خاله چهار تا دایی پنج تا عمه هیچ نقشی ما نداشتیم در شکل گرفتن این ارتباط نام این ارتباطات میشه چی؟ میشه رحم اینا میشن ارحام ما اما یه ارتباطاتی دارید که شما خودتون ایجاد میکنید نبوده اینها تصمیم میگیرند این خانم آقا ازدواج میکنن خیشاوندان دوسو نسبت به یکدیگر اینها نسبت به هر اون طرف دیگرشون رحم نیستن یعنی این ارتباطات سببی ارحام نمیشن اقربا هم میشن. اینا عقربا ارحام فقط خیشاوندان نیست که اینها ایجاد اون به دست ما نیست اینا نسبی هستند خدا قرار داده است به بیان دیگه و ارحام مقطوع اینها رو رحم نکردند حتی نسبت به ارحامشون هم تیغ رو کشیدن به خاطر منافع جاهلانه‌شون قطع کردن و ارحام دیگه چی؟ و قارات مشنونه چه اتفاقی افتاد چی پیش اومد در میان این پیغمبرزادگان زادگان به این جماعات و قارات کلمه قارات ده اون قارت فارسی که بردند دو قارات کردن نه قارات به معنای حجمه و حمله به همین حاطرگاه به جنگها قارات و گفته شده است اصلا کتاب داریم القارات اصلا کتاب بسیار مهم نیست القارات مشنونه از ماده شن، ولی تلی به همو قومن اذار کبو شنل فرسان و شن ای حجم عليه من كل جانب، یعنی از هر طرف حجم کردن و قارات مشنونه و چه ها و حمله های فرانگیری چه جنگ های خانمان سوزی بین این های گاهی بعض از جنگها تاریخ تاریخمون در میان عرم به بیش از 100 سال می کشه بین دو قبیله یعنی تا 100 سال با هم جنگیدن فرزنده این با فرزنده دو، فرزنده ای با دو. نسل در نسل از میراسهای اینها شد جنگیدن با فلان قبیله آقا کیه این قبیله چیه چرا باید بهش به جنگیم چون پدرانمون جنگیدند. رضا ما هم می جنگیم و قاراتن مشتون چه کی اقتاب و قارات مشنونه فعتبرو عبرت بگیرید به حال ولد اسماعیل از اول خوندیم تا اینجا که کارشون به اینجا کشید حالا به این که میرسد امیر به تعبیر ما روی دوم سکرومت رو رحمی کند فنزرو به این اوج رسیدن به این نهایت رسیدن حالا خداوند برگردان شرارت رو فنزرو الى مواقع نعم الله عليهم، حين بعث علیهم رسولا حالا نگاه کنید اونجا فهمون تعملو اینجا فرمود فنزرو اینم هم همون معنا رو داره نظر به معنای اون تعمق و دیدن با تمام توجهات فکری و حقلی فنزرو الى مواقع نعم الله کلمه این مواقع از ماده وقوع یه فلا او به مواقع نجوم انهو لغسمون لوتعلمون عظیم انهو لغرهانون کریم میخونید سور بار که این واقعه سوگن به مواقع نجوم یه معناش شنی قرار گرفتن استقرار ستارگان یه معناش شنی فرود آمدن ستارگان به زیر آمدن ستارگان اینجا منظور از مواده وقوع و بزیر آمدن است فنز رو الى مواده نعم الله علیهم نگاه کنید چطور خدا فرود آورد و ریخت بر سری اینها نعمت های خودش رو یکباره. تو این شرایط تو اون قارات مشنونه تو اون بنات موعوده، تو اون اسنام معبوده ارهام مقتوعه توی این شرایطی که توضیح دادیم چه اتفاقی افتاد چطور نعمت خدا بر اینها باران گرفت هی زمانی که بعف علیهم رسول ها زمانی که خداوند مبعوث کرد درمیان ایشان رسولی را کدام رسول وجود نازنین خاتم النبیین و المرسلین محمد مصطفیم جو هو الذی بعث فی الامهین رسولا اومد تو این امین و این جماعت بعث علیهم رسولا حالا چقدر زیبا این برگردان سفر رو امیرالمؤمنین بازگو میکنه خب دقت کنید ابتدا حالاتشون رو گفت اینا تشتت و تفرق و رسید کارشون که به قدرت بر اینها چنگال انتختن لهشون کردن اینا رفت چندن در یه وادی این چنینی مبتلا شدن به چنین حالاتی حالا منت الهی و لطف الهی و انایات الهی آمد الان میخونیم خدمت دوستان اما واعصفا و دلتنگا که فردا باید باز چهره بعدشو بخونی که باز مجدد چی شد بعد از آمدن این نعمت ها باز چی شد باز؟ فرمود فعقد دین ملتهم طاعتهم این پیامبر رو خداوند مبعوث کرد فعقد عقد به معنای گره زدن گره زد به ملت این پیامبر طاعات ایشان را یعنی پیامبر شد محور طاعت خداوند ملت پیامبر شد محور طاعت خداوند برای اینها کلمه ملت دین ملت ملت به اشخاص اضافه می شود شما شو میگید ملت ملت عبيكم ابراهیم ملت ابراهیم ملت موسا ملت رسول خدا اما دین ابراهیم دین موسا و دین پیامبر مکرم اسلام کمتر رو گفته میشه به بیان دین دین الله ان دین الدين ان دين الله لا یصاب بالعقول دین به خدا اضافه میشه ملت به اشخاص اضافه میشه چون از ماده ملل ملل املا نام لا یوم بعد میشه املا خدا فرموده است و اینها نوشتند و آماده کردند و برای مردم آوردند ملت گفته میشه به اون چه پیامبر می آورد خداوند جره زد تاعت اینشان رو به ملت این پیامبر گفت برید تو ملت این پیامبر قرار بگیرید و تاعت کنید ببینید چه اتفاقی براتون می افتاد قلن کنتم تحبون الله فتبعونی یحبب کم الله اگر اومدید تاعت و تبعیت کردید بعد به جایی می رسید که در محور محبت خدا قرار می گیرید و اگر کسی محبوب خدا شد خدا زمین و آسمان رو برای او می گوشاید. اگر کسی محبوب خدا شد دیشب نپریشب خوندیم خدمت دوستان در سود انبیا. میشه بیا می یا نارو کونی بردن و سلامن علار ابراهیم آتش هم برون گلستان میشه. فرمود و جمع علا دعوته این الفتهم خدا به سبب دعوت این پیامبر دعوت توحیدی اون اورودان اله اللهون در بقیه موضوعاتی که مفاد و محتوای دعوت این پیامبر رو تشکیل میداد جمع کرد الفت اینها را پیوست ها و دلبستگی ها را از اون تفرقه و تشتت جمع کرد کنار هم قرار داد خدا به برکت این نبی مکرّم و دعوت او و فراخوان او انف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا کنتم علا بودید با اون وضعیت شفاخفتن من النار با اون تفرقه و تشدد خداوند الفت به سبب دعوت پیامبر بین دلها ایجاد کرد شرق و قرب و سیاه و سفید و ایرانی و اجم و عرب و حبشی و نمی اصفهانی و شیرازی و کازرونی و سلمان و عبیزر و امار و مقداد و بلال و همه کرد تعلیف کرد جمع علا دعوتی الفتو نگاه کنید انظر و ببینید چیفن نشرت نعمتو علیه هم جناه کرامتها اینجا امام یه تعابیر به کار می‌برن که بررسی این تعابیر دیگه دانشکده ادبیات هست و دوره دکتری ادبیات عربه اونجا باید بررسی کرد زیبایی ها و های سخن امام رو اما دیگه اون محتواشو من ساده ساده‌ام می‌کنم نه بالب به اون پیچی دیگی های زیبایی ادبی سخن امام که در اوج فصاحت و بلاقت است شما ببینید چگونه نعمت بریشان بال کرامتش رو پوشود چطور خدا به اینها نعمتی داد که همچون سایه رحمتی رحمتی بریشان سایه افکند و موجب کرامت، عزت و شکوه این جماعتی شد که اون گونه ذلت و خفت داشتند. و اصالت لهم جداول نعیمه ها اصالت از اون ماده سیل جاری شدن. جدول به معنای نهر، به معنای رود و ببینید خداوند جویهای نعمت را چگونه بریشان؟ جاری که اومد نعمت های الهی یکی بعد از دیگری و از لهم جادوا ولنعیمها والتفت المنته بهم في اوقات برکاتها و چگونه پیوستگی پیدا کرد این ملت اینها با فوايد ها و برکت هایی که خداوند برای ایشان در همه زمین ها فراهم کرد نتیجه این شد فی في نعمتها طرقي در نعمت های خدا چی شدند قرق شدن فرو رفتن چه معارفی از اون وعدالبنات کار به کجا کشید که ربنا حبلنا منهزباجنا و زرگیاتنا قررته اعین اون فرزندانی که مظلومانه زیر خاک رفتن اسمشون شی شد؟ شد قررت العین تو این مکتب تو این کتاب و کلام شدن قررتالعین ای چار ده سال قررت العین نظر علوم کومین شدن قررت این ربنا حبل نام نزواجنا سوری مبارکه فرخان خدای بده از فنزندان و همسران ما قررت عیون اینا قررت العین شدن به جای زیر خاک رفتن کاربون جام کشید که نابترین معارف بسم الله الرحمن الرحیم قلوه و الله احد الله سمد لم یلد و لم انم یکون تحقوفان تمام معارف یهودیت و مسیحیت رو تمام توحید و عمم پیشین رو جمع کنید توی یک کفه ترازو بذارید سوره اخلاص رو تو یک کفه ترازو بذارید سوره اخلاص سنگین تره ثابت شده این. وقتی آخوند ملا را میاد 600 صفحه شرح یک خط رو بازگو میکنه در این. سوره یا بزرگان مفصلین چه می کنند؟ در بیان برید فراتر وجود نازنین باقی را علم الاولین و نه شش هزار مطلب از کلمه سمد من از واژه سمد تمام شراری الهی را استخراج می کنم بیاید آیات پایانی سوره مبارکه هشت رو بخونید از لاو هنزل ناها از القرآ الاجبلید بیایید آیات ششگانه اول حدید رو بخونید تا خوب اول و الاخر و ظاهر و الباطن چه اتفاقاتی افتند امیدوارم یه وقتی توفیق باشه که خدمت دوستان در این روانه که به نه در این چند سال در محضن شما دوستان و عزیزان من خودم اب نداره با که هم نیست میگم دیروز بعد از بحث دیروز خودم میرفتم به خلبت خودم فکر میکنم خدایا این چه بزرگی که نصیب من و نصیب عزیزان شده به دوست عزیزی میگفتم که اگر 360 روز صبح توفیقی باشه من تو اسمهان باشم خدمت دوستان تردیدی ندارم که جمعیت از این فزونتر خواهد بود و دلها مشتاقتر از این به و امیر و المؤمنین. چه گنجینی رو توفیق باشه وقتی خطبه اشباه رو من براتون بگم خطبه اشباه مپوت میکند امیران انسان رو از جاذبه های توحیدی لایه لایه بر میدارد پردهها ها رو به کناری میزند از آشنایی با وزرت جانان این جلوه هایی نشون میده از معرفت توحیدی و معرفت توحیدی که کسی بوش نبرده است جز بین التافس و هم فی ها غرقین قرق نعمت های معنوی شدید قرق نعمت های مادی شدید فی خزره عیشا فی خزره عیشا فاکهین در یه سبزی و شادابی عیش و لذتی از زندگی فاکهین کلمه فاکهین از ماده فکه شاید از فاکه به معنای میوه از ویژگی های میوه چیست؟ فاکه اینی که شادابی میده به انسان با دوستان فیبرش مواد فیبرش زیاد نشاد میده شادابی میده ترابط میده به انسان به همین خاطر به حادات و خوش با ترابط فکه میگوین فکهین فاکهین یعنی کاملا شاداب و سرزنده شدن از اون خمودی به نر آمدن قد تربعت امور رو بهم شما دو زانو روی زانوتون نشستید روی دو ساقتون نشستید خسته میشید و چجوری می نشینید یه مقداری مستقر بشید راحت تر می نشینید چهار زانو می نشینید نام این تربیع اگر دو زانو نشسته باشید روی ساق یه تکانتون بدن کج اما اگر چهار زانو نشسته باشید تکانتون بدن تکان نمی خورید تربیع یعنی حالت استقرار و ثبات ات ربعت الامور بهم امور کاملا برای اینها مستقر و ثابت فی ظل سلطان طاهرن اینها شدند در سایه سلطان و حاکمیتی قدرتمند مراد دوران حاکمیت وجود نبی محترم و آوت املحان الاک انفع عز غالب و معو یافتند پناه یافتند حالاتشون در کنف و در سایه حمایت از و قدرت و قلبه و عزت و شوکتی پیروز و حاکم و تاعت من بخونم این تا پایان این قسمت میخونم منان توامش میکنم و تعتفت الامور علیهن و کارها متوجه اینها شد معطوف به اینها شد فی ذرا ملک ثابت ذروح به کوهان شطور به قله ورست به قله دماوند اون بالای بالای هر چیزی رو میگن زروه و زروه زرا جمعش تعتفت الامور علیه هم فی زرا ملکن ثابت در اون قله ملند قدرت به حکومت مقتدر اینها متوجه شد به اینها و مستحر شدن و چنین جایگاهی رو پیدا کردن شدن فهم حکامون علن آلمین خواه که عرب از مشرق عقصا گذراندیم، از ناحیه یک قرب به افریقی راندیم کار به اونجا کشید که گستابلوون می نویسد بیست سال تموم شد قریب یک میلیون اشهد انا اله الا اللہ و اشهد ان رسول این اقتدار و قدرت و شوکت خدا رساند این جماعت را فهم حکام و نعل العالمین برای وسعت پهنا اینها حاکمیت وقتی که پیامبر و رسول خدا اون سالی که نامه نوشتند پیامبر شد عامل مکاتبه سال نامنگاری که دعمت همه همگان رو نوشتند به خود عزیمل عظیم الفوس. چند زیبا با ادب نوشتن. به کسرا بزرگ ایرانیان الا کسرا عظیم الفورز تسلم اسلام بیاورت تا در دنیا و آخرت سالم باشی و در پناه حق باشی به مجرد این که دید نوشته بودن من که خودشون الا از من پیانبر به به مجرد این که دید دا نامه گردن شکن را نه نامه بلکه نام خیشتن را چرا؟ گفت فرضا زهره که با این افتخارم نویسد نام خود بالای نامم چه میشه اول نوشته بعد اسم منو نوشته فردوسی هم خیلی قشنگ ماجرا رو نقل میکنه این که با نظامی اینا که خوندم اما فردوسی هم خیلی قشنگ اون ابیاتی که میگن آیا فردوسی بی یا با ادب شک نکنید از مؤدب‌ترین بزرگان و ادب پارسی بوده است بعد ای پس این اینا نقل قوله گفت نقل فوش فوش نیست شد و خوردن خوردن سوسمار عرب را به جایی رسیده از کار که تاج کیان می کند آرزو توفو بر توی چرخ گردون توفو این هر رو نا. نوشت به قیصر به بیست و نه منطقه جهان پیامبر نامه نوشتند و دعوت شندند دین ها رو به اسلام دعوت کردن 29 مند خیلی از اینا استقبال کردن ادب کردن مانند بزرگ اسکندریه مانند کجا؟ حتی همین بحرین منطقه بحرینی که از اونها بوده است کم میدواریم خداوند گشایشی در کار اون مظلوم بحرین با آبروی همیر المومنین ایجاد بفرماید انشانده به این منطقه به مناطق 29 منطقه دنیا این وسط کار بود فرمود و انا لا في اطراف الاراضين و اينها شدن ملوکی در اطراف زمین يملكون الامور الا من كانوا عليهم کار به اینجا کشید که اینها مالک کسانی شدن حاکم کسانی شدن که قبلا حاکم اینها بودن و يمزن الاحكام في من كانوا يمزيها فيهم اینها حاکم و رد و قبول کردن و پذیرفتن درد کردن احکام و قواعد رو در مورد کسی که در مورد اینها در مورد اونها که در رابطه با اینها اینها حکم می و امرشون نافذ بود به حدی مورد لطف خدا قرار گرفتن و بهشون نعمت تمام شد که لا مزل لهم قناتون قنات یعنی نیزه هیچگاه نیزه کش نشد یعنی زعفی نداشتن لا تقمز و لهم قناتون قمز به منای ایوه به زیر آمدن پایین آمدن بمزه این چشمون بیرید پایین لا تقمز و لهم قناتون و لا تقرم و لهم صفاتون و هیچگاه کوبیده نشد شوکت و قدرتشون با اختدار و قدرت باقی ماندند اما آیا پایدار ماند؟ چنین حالتی یا پایدار نماند اگر نماند چرا پایدار نماند علاوه نکم قد نفستوم عیدیه من حبل تاعت به خدا قسم شما دستتون و از حبل و رسمان تاعت خدا کندید و جدا کردید باشد نشاند این فراز بسیار حساس و تکان دهنده که سخن امیرالمؤمنین که تک تک ما مخاطبش هستیم ان فردا با هم بررسی خواهیم کرد متشکرم و سلام علیکم و رحمت الله